عزیزان به کلاس دیگه ای از دانشکده کچک کتاب مقدس خوش اومدیم. ما امروز به بررسی آخرین کتاب از کتاب مقدس میپردازیم در درس گذشته معلم ما گفت که دو کلید برای کمک به درک این کتاب مشکل وجود داره. کلید اصلی روح القدسه. ما برای درک مسئله روحانی باید روح خدا رو داشته باشیم. درسانی. باید بفهمیم که تمام نمادها در این کتاب نماد کتاب مقدسی هستند. معلم ما در درس امروز بعضی از این نمادهای کتاب مقدسی رو توضیح میده. با هم گوش می کنیم. برای بار دوم دوست دارم شما را دعوت کنم که در بررسی آخرین کتاب از کتاب مقدس یعنی مکاشفه ایسای مسیح با ما همراه باشید. توجه داشته باشید که مکاشفه عیسی مسیح به یوحنای رسول بعد از اینکه او به جزیره پاتموس تبعید شده بود داده شد، اون توسط یک فرشته به یوحنا تفهیم شد. ما میتونیم اینطور تفسیر کنیم چون از کلمه تفهیم استفاده شده، میشه گفت که پیغام مکاشفه عیسی مسیح به زبان نشانه ها به یوحنا داده شد تا اون رو به قوم خدا برسونه. چنانکه گویی این پیام به صورت رمزی به قوم خدا داده شده بود و تنها راهی که قوم خدا میتوانستند این پیام رمزی رو درک کنند این بود که کلیدی رمزگشا داشته باشن. من قبلا بعضی از این کلیدها رو به شما معرفی کرده بودم و حالا دوست دارم ضمن ادامه بررسی کتاب مکاشفه کلیدهای بیشتری رو به شما نشون بدم بذارید در هاشیه بگم که تنها چیزی که امیدوارم بتونم انجام بدم اینه که کتاب مکاشفه رو در زمان کوتاهی که داریم به شما معرفی کنم به لحاظی این میتونه یک معرفی تلقی بشه این نحوه پرداختن ما به کتاب مکاشفه خواهد بود همونطور که در ابتدای این دوره گفتم، این یک دوره مطالعه اجمالی از کتاب مقدس است. مطالعه هست که قسمت مختلف این کتاب رو یک جا جمع می‌کنه. مطالعه اجمالی تلاشی هست برای مروری سریع از تمامی قسمت کتاب مقدس. مطالعه 66 کتاب و نشان دادن اینکه این کتاب ها چگونه با همدیگر به صورت یک مجموعه در اومدن. پس این یک مطالعه مفصل مکاشفه نیست. تنها یک معرفی مرور و بررسی کلی هست که ببینیم ارتباط کتاب مکاشفه با کتاب دیگر کتاب مقدس چی هست. در جلسه اول بررسی این کتاب بهتون گفتم که کتاب مقدس با یک مکاشفه شروع شد. کتاب مقدس با دادن مکاشفه ای از یک سری حقایق بنیادی شروع شد که بدون دریافت مکاشفه ای از خدا ما نمیتونستیم اون حقایق رو درک کنیم. گفتیم که مفهوم کلمه مکاشفه یک سری حقایقی هست که پشت پرده هستند و ما هرگز نمیتونیم حدس بزنیم که چه حقایقی پشت اون پرده هستند مگر اینکه خود خدا پرده رو کنار بزنه در مکاشفه خدا پرده رو کنار میزنه و چیزی رو به ما نشون میده که خودمون هرگز به تنهایی قادر نبودیم بفهمیم و یا به هیچ عنوان نمیتونستیم از اون خبر داشته باشیم اولین عرصه از حقیقت که کتاب مقدس به ما مکاشفه میده آفرینش یا شروع خلقت هست. همه چیز چگونه آغاز شد کتاب مقدس در خاتمه با کنار زدن پرده به پایان میرسه چون که عرصه دیگری از حقیقت که ما نمیتونستیم بدون دریافت مکاشفه از خدا درک کنیم حقایق مربوط به آینده هستند همه چیز چگونه به پایان خواهند رسید؟ چه اتفاقاتی در دنیا خواهند افتاد؟ بدون مکاشفه ای از خدا ما جواب این سوالات رو نمیتونستیم پیدا کنیم. عبارتی در آخرین کتاب کتاب مقدس هست که چندین بار اون رو در جاهای مختلف این کتاب می بینیم. او میگه من آلفا و اومگا هستم. آلفا اولین حرف از حروف یونانی و اومگا آخرین حرف از حروف یونانی هست. پس گفتن این که من آلفا و اومگا هستم مثل اینه که بگیم من الف و یا هستم. معمولا این جمله برای ما اینطور تفسیر میشه من ابتدا و انتها هستم این مناسب ترین تفسیر برای این جمله در کتاب مکاشفه هست. چون که این بررسی ما از کتاب مقدس رو جنبندی میکنه ما با آغازها شروع کردیم کلمه پیدایش اشاره به آغازها یا ابتدای هر چیزی میکنه و ما با پیدایش شروع کردیم و حالا میخواهیم با پایان همه چیز کتاب مقدس رو خاتمه بدیم ما از کسی مکاشفه دریافت خواهیم کرد که خودش رو ابتدا و انتها معرفی میکنه. کسی که بود هست و همیشه خواهد بود. مسیح ابدی. یکی از روشهایی که ابتدا و انتها برای ما به تصویر کشیده شده در باب چهار مکاشفه هست. یکی از کلید های های پیام رمزی مکاشفه این کلید است کتاب مکاشفه به زبان نشانه نوشته شده که نشون میده کتاب مکاشفه یک کتاب، نشانه ها یا نمادها هست وقتی ما تعالیم ایسای مسیح رو بررسی می کردیم، به کلمه مثل نگاه کردیم و بهتون گفتم که کلمه اصلی مثل در زبان یونانی کلمه مرکب پارابل هست که از دو کلمه بالو به معنی انداختن و کلمه پارا به معنی همراه تشکیل شده بود پارابل داستان یا مثالی هست که به همراه حقیقتی میاد و هدفش آسان کردن درک اون حقیقت است. حالا نماد یا سمبول چی هست؟ کلمه سمبل هم یک کلمه مشابه در زبان یونانی هست که باز از همون کلمه بالو به معنی انداختن هست. اما قسمت اول کلمه به معنی از میان هست. وقتی شما سمبولی دارید، یک مثال یا داستانی دارید که به میان انداخته میشه، تا اینکه حقیقتی رو که تعلیم داده میشه به تصویر بکشه. به میان انداختن به معنی همون مطرح کردن هست. اون این تصویر رو مطرح میکنه و سعی میکنه حقیقت رو به تصویر بکشه. کتاب مکاشفه کتابی است پر از نمادها، حقایق یا تصاویری که به ذهن ما فرستاده میشن چون هدف این هست که مکاشفه ای از عیسی مسیح به ما بدم. همونطور که بود همونطور که هست و همونطور که تا عبد خواهد بود. اولین کلیدری که به اون اشاره کردیم روح القدس بود. ما نمیتونیم بدون روح القدس حقایق روحانی رو درک کنیم این مخصوصا وقتی به کتاب مکاشفه میرسیم بیشتر صدق میکنه ما بدون شاه کلید یا کلید اصلی که همون روح القدس هست هرگز نمیتونستیم کتاب مکاشفه رو که مربوط به آینده هست درک بکنیم به گفته عیسی در یوحنا 16 این کار مختص روح القدس هست که حقایق روحانی در خصوص امور آینده رو بر ما آشکار میکنه بنابراین وقتی ما به آینده به امور روحانی که هنوز انجام نشده نگاه می کنیم، باید واقعا دنبال شاه کلید یا روح القدس بگردیم وقتی که روح القدس یا شاه کلید رو داریم چیز بعدی که نیاز داریم درک کنیم اینه که تمام این نمادها که در مکاشفه آمدند نمادهایی کتاب مقدسی هستند کلید درک این نمادهای کتاب مقدسی اینه که این نمادها رو در جاهای دیگر کتاب مقدس پیدا کنیم و معانی اونها رو درک کنید وقتی شما جاهایی رو که این نمادها برای اولین بار در کتاب مقدس اومده پیدا کنید و معانی اونها رو درک کنید اون وقت شانس بیشتری برای درک اون نمادها در کتاب مکاشفه خواهید داشت در رابطه با این کلید ما مثالی به شما دادیم که موضوعی رو در کتاب مکاشفه در مورد همون کسی که ابتدا و انتها هست باز می کنه در عهد قدیم کاهن اعظم در خیمه پرستش در بیابان و بعدها در معبد سلیمان سینه بندی می پوشید که بر روی اون دوازده سنگ قیمتی وجود داشت که هر کدوم از اون سنگ ها نشاندهنده یکی از طایفه های اسرائیل بود. وقتی در باب چهارم مکاشفه دری به سوی آسمان گشوده میشه، ما تختی می بینیم که بر روی اون کسی نشسته که ظاهری مانند یشم و عقیق داره. همینطور رنگین کمانی در اطراف تخت می بینیم که مانند زمرد هست. اون سنگ ها جواهراتی بودند که 12 طایفه اسرائیل رو نشون میدادن هر کدوم از جواهرات نامی داشتند و اون نامها ها معنای خاصی داشتند اولین سنگ طایفه روبین رو نشون میداد روبین اولین پسر از دوازده پسر اسرائیل بود و معنی اسمش این بود اینک پسر من دومین طایفه از 12 طایفه بنیامین بود معنی بنیامین این هست پسر دست راست من زمرد جواهری بود که نشان ی طایفه یهودا بود و معنی یهودا این بود ستایش یا پرستش پس به زبان زیبای نشانه وقتی در باب چهار دری به سوی آسمان باز میشه پیام اون برای یهودیانی که به کتاب مقدس تسلط داشتند این بود اینک پسر من، پسر دست راست من او را به ستایی در مخاشفه باب چهار و پنج میبینیم که زمان زیبایی برای پرستش در جایگاه ابدی اختصاص یافته بود و چیزی که به نظر میرسه داره در آسمان اتفاق میفته اینه که خدای پدر مرکز پرستش رو در آسمان از خودش به طرف پسرش یعنی برهی که به نظر میرسید زب شده برمیگردونه خدا داره میگه پسر منو بپرستید به خاطر کاری که انجام داده در پرتو این که او کی بود، کی هست و تا ابد چه کسی خواهد بود او رو او بپرستی به این دلیل گفتم که نمادهایی هایی که در کتاب مکاشفه هستند، نمات کتاب مقدسی هستند. معنی این نمادها رو در جاهای دیگر کتاب مقدس یاد بگیرید مخصوصا جاهایی که برای اولین بار میبینید به خروج 28 برگردید و شرح سینه بند کاهنان رو بخونید اون موقع وقتی با این نمادها در کتاب مکاشفه مواجه میشید معنی اونها رو خواهید فهمید از اون جایی که این نماتا، کتاب هستند، میتونید متوجه بشید که چرا کتاب مکاشفه در آخر کتاب مقدس قرار گرفته. پیش نیاز درک کتاب مکاشفه این هست که 65 کتاب قبل از اون در کتاب مقدس رو به خوبی درک بکنید. به این دلیل من همیشه وقتی کسی که تازه ایمان آورده میگه میخوام قبل از همه کتاب ها کتاب مکاشفه رو بخونم کمی تعجب میکنم. اونها معمولاً نمیتونن همه اون رو درک کنن و شما دلیلش رو میدونید چرا؟ به این دلیل که این سمبل ها مانند یک نمودار روحانی هستند و در زم برای درک کامل اون باید 65 کتاب قبلی به خوبی فهمیده بشن. من فکر می کنم این کتاب به حق در انتهای کتاب مقدس قرار گرفته. نمات های کتاب مقدسی دیگری هستند که من مایلم از اونها استفاده کنم تا این کلید مهم رو به تصویر بکشم که نمات های کتاب مکاشفه نمادهایی کتاب مقدسی هستند. مثلا ملاحظه می کنید که در مکاشفه یک چهار چهار پنج و پنج شش به هفت روح خدا اشاره شده از جانب یوحنا به هفت کلیسا در استان آسیا تقدیم می شود. از جانب آن کسی که هست و بود و خواهد آمد و از جانب هفت روح که در پیشگاه تخت شاهی او هستند. از آن تخت برق ساته می و قررش رد شنیده می شود. و در جلوی تخت هفت مشعل سوزان میسو اینها هفت روح خدا هستند آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران برایی ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود هفت چشمی که هفت روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شده هفت روح خدا کدام ها هستند تا حالا در مورد هفت روح خدا چیزی شنیدید کسانی که اهمیت زیادی به اعداد در کتاب مقدس قائل هستند، به ما میگن که عدد هفت عدد کامل هست یا عدد کمال. این میتونه نشون بده که هفت روح خدا بیانگر روح مرکب فراگیر و کامل خدا هست. بیان کاملی از خدا که در ذات خودش روحانی هست. اما برخی از محققین معتقدند که هفت روح خدا به نبوت اشعیا در عهد قدیم برمیگرده در باب یازده آیات یک و دو اشعیای نبی شاهزاده انبیا این نبوت خارق‌العاده رو در رابطه با هفت روح خدا به ما میده که توسط یوحنا رسول در مکاشفه به انجام میرسه اشعیا میگه و نهالی از تنه یسا بیرون آمده شاخه ای از ریشه هایش خواهد گفت و روح خداوند این اولیشه بر او قرار خواهد گرفت یعنی روح حکمت دومی و فهم سومی و روح مشورت چهارمی و قوت پنجمی و روح معرفت ششمی و ترس خداوند هفتمی است اشعیا به ما میگه که مسیحا خواهد آمد و وقتی بیاید عیسی مسیح مظهر کامل خدا خواهد بود که در ذات خودش روح است به گفته اشعیا عیسی مسیح این نمای هفت لایه زندگی رو که حقیقتاً پر از روح و یا در کنترل روح است به تصویر خواهد کشید. یک ایماندار پر از روح کیه؟ یک شبان پر از روح چیه؟ بعضی ها امروزه به این سوال اینطور پاسخ میدن که یک شخص پر از روح کسیه که به زبانها صحبت میکنه. من شخصاً معتقدم که کسی که پر از روحه و یا در کنترل روح است کسیه که با فیض خدا این هفت مظهر روحانی رو که توسط یوحنا در مکاشفه و توسط اشعیا نبی در باب یازده کتابش به عنوان هفت روح خدا به تصویر کشیده شده از خودش نشون میده نمای کامل این هفت روح که اشعیا در نبوتش نشون داده زندگی عیسی مسیح است وقتی که پولس رسول در افسوسیان 5 18 فرمان میده که مست شراب نشوید زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند بلکه از روح القدس پر شوید در واقع به ما فرمان میده که شبیه ایسای مسیح باشید. به خاطر بعضی زیاد رویه بسیاری از ایمانداران و پیروان مسیح میترسند که ایماندارانی پر از روح باشند. اما در هر حال، آیا هر کدام از ما میتونیم و یا باید از این هفت خصوصیت روحانی که توسط یوحنا رسول و اشعای نبی به تصویر کشیده شده دوری کنیم؟ آیا نباید هر کدوم از ما بخواهیم که شبیه ایسای مسیح بشیم؟ در نمادهای های زیبای مخاشفه ما هفت چراغدان را میبینیم که در مقابل تخت در آسمان ایستادهاند. گفته شده که این هفت چراغدان نماد هفت روح خدا هستند. من مخصوصا باب پنج آیه شش رو خیلی دوست دارم که میگه آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بر ایستاده بود که علامت بره قربانی شده رو داشت آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود هفت چشمی که هفت روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند در کتاب مقدس محققین معتقدند که شاخها نماد قدرت و چشمها نماد حکمت هستند. بنابراین چیزی که یوحنا به ما میگه اینه که این بره که به نظر میرسید زب شده عملا روح مرکب و فراگیر و تجلی روح خدا هست او مظهر روح خدا هست که قدرت کامل و حکمت کامل خدا رو نشون میده وقتی عیسی مسیح مانند یک بره زب شد مرگ او مظهری از حکمت کامل و قدرت کامل خدا بود برهی که به نظر میرسید زب شده هفت روح خدا بود که به دنیا رفته بود و نشاندهنده ی ذات و هویت خدا بود بنابراین وقتی عیسی مسیح بر صلیب مرد او مظهر روح کامل، مرکب و فراگیر خدا بود. اما وقتی عیسی اینجا بر روی زمین زندگی میکرد و در یوحنا 14 گفت که من راه راستی و حیات هستم او باز هم مظهری از ذات خدا بود. چون که او کاملا این هفت روح خدا رو نشون میداد. باز هم بهش آیا نبی گوش کنید که در مورد هفت روح خدا میگه که در زندگی ایسای مسیح و در نمادهای های زیبای کتاب مقدسی در کتاب مکاشفه به انجام رسید او میگه و نهالی از تنه یسا بیرون آمده شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت یعنی روح حکمت و فهر و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند روح خداوند در خدمت عیسی بسیار مهم بود یادتونه وقتی خدمت عیسی را از انجیل لغا بررسی می کردیم، در باب مقدماتی گفته شده بود که چطور بحران ها و رنج مسیح بر روح خدا تحکیب داشت. مسیح با روح به بیابان هدایت شد تا وسوسه بشه. او با قدرت روح از بیابان برگشت و خود او در معبد گفت روح خداوند بر من است او مرا محس کرده تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم. روح خداوند یقیناً در او و بر او بود و از طریق او خودش رو به کمال ظاهر می کرد. ایسا روح معرفت داشت، یعنی او آگاهی کامل از کلام خدا داشت. وقتی عیسی توسط شیطان در بیابان وسوسه می شد، او با آگاهی کامل از کتاب مقدس به شیطان پاسخ داد. او در روح معرفت پاسخ می داد، همینطور که او در مسئله برزگر به ما تعلیم می داد، روح درک و فهم هم داشت. کلام خدا قدرت بزرگی هست اما اگر اون رو درک نکنید قدرت بزرگی نخواهد بود اگر اون در ذهن شما نفوظ نکنه قدرتی نخواهد داشت پس روح درک بسیار مهم هست و عیسی یقینا روح درک رو داشت حکمت کاربورد معرفت هست اون نه تنها درک معرفت هست بلکه کاربورد اون هم هست عیسی روح حکمت داشت چون که کلام خدا رو در زندگی کامل خود به کمال به کار می برد. نیروی محرکه عیسی با عنوان یک معلم این بود که هرچی رو که تعلیم می‌داد در ذات بشری خودش اون رو به کار می‌گرفت او روح معرفت داشت روح درک داشت اما همینطور هر چیزی رو که میدونست به کمال به کار می‌گرفت که این تجلی روح حکمت بود اینجا به روح مشورت هم اشاره شده وقتی عیسی کلام خدا و کاربرد اون رو با مردم در میون میگذاشت در واقع این واقعیت رو نشون میداد که روح مشورت داره به این دلیل که او گفتگوهای زیادی با مردم داشت ما امروزه به این گفتگوها مشاوره می گیم. وقتی که او با زن سامری بر سر چاه صحبت میکرد و یا وقتی یک روز تمام در عریها با زکا وقت گذران در واقع داشت با در میان گذاشتن کلام خدا با آنها به اونها مشورت میداد وقتی کلام خدا از نظر معرفت و درک و کاربرد و مشاوره با مردم در میون گذاشته بشه اون موقع قدرت بزرگی خواهد داشت علاوه روح قوت هم از طریق عیسی نشان داده میشد و بعد روح پرستش بود یقینا عیسی یک مرد پرستنده بود و روح پرستش رو به طور کامل نشان میداد اگر عهد جدید رو باز کنید و انگشتتون رو روی هر ای که در هر کدوم از اناجیل بذارید خواهید دید که اونجا ایسا یا داره با تعلیم کلام خدا و تأثیر روح خدا به مردم خدمت میکنه یا او را میبینید که جایی در حال دعا هست و یا در بالای کوهی مشغول پرستش خداست عیسی بیش از نیمی از وقت خود را به پرستش خدا می گذرون و بقیه وقتش رو صرف انجام کارهای خدا میکرد. امروز ما غالبا عبارتی رو می بینیم که کتاب مقدسی هست اما امروزه بیشتر از سی سال قبل از اون استفاده میشه. اون عبارت اینه، پر از روح ما به ایمانداران پر از روح اشاره می کنیم و بعد ایمانداران دیگری هستند که احتمالا پر از روح نیستند. برداشت از این عبارت این هست که ایمانداران پر از روح همیشه پر از روحن و بقیه هرگز از روح پر نمیشن. در واقع این روش درستی برای استفاده از این واژه کتاب مقدسی نیست. گاهگاهی مردم از من میپرسن آیا تو پر از روح هستی؟ و جواب من معمولاً این هست همیشه نه تو چطور هیچ کسی همیشه پر از روح نیست اما عیسی همیشه صد درصد پر از روح بود اما ما همیشه پر از روح نیستیم باید می‌بودیم به ما فرمان داده شده که پر از روح باشیم می‌تونیم باشیم اما من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از ما بتونه بگه که من همیشه پر از روح هستم یا تماماً توسط روح کنترل می‌شم من فکر میکنم عرصه دیگری که امروزه سو میشه اینه که اگر مرد یا زن ایمانداری پر از روح باشه، اگر کلیسایی یا واعزی پر از روح باشه، اونها باید چطور باشن و چه چیزی نشون میده و ثابت میکنه که اونها واقعا پر از روح هستن؟ ما امروزه برای این جواب جوابهای متفاوتی میشنویم بسیاری از مردم میگن که نشانه پر از روح بودن عطیه صحبت به زبانها هست. همینطور میگن نشانه پر از روح بودن اینه که شما در پرستش هاتون شیوه خاصی مثل مناجات داشته باشید. اینها میتونن نشون دهنده این باشند که شما کلیسایی پر از روح دارید. من فکر نمی کنم اینها جوابهای کتاب مقدسی برای این سوالات باشن. کتاب مقدس در مکاشفه و اشعیا در رابطه با هفت روح چنین چیزی به ما میگن. شما نباید از پر شدن از روح بترسید. اگر شما پر از روح بشید مانند عیسی خواهید بود و کیه که نخواد مثل عیسی مسیح بشه عیسی مسیح همیشه پر از روح بود آیا این یعنی او اتیه زبان ها داشت یعنی به زبان های غیر صحبت میکرد منظور کتاب مقدس چیه وقتی به ما میگه عیسی همیشه پر از روح بود وقتی کتاب مقدس میگه که عیسی پر از روح بود منظورش این بود که عیسی روح خداوند رو داشت او عملا مشارکتی حیاتی دائمی و مداوم با روح خدا داشت او روح معرفت داشت او آگاهی کاملی از کلام خدا داشت او روح درک داشت او نه تنها کلام خدا رو درک می کرد بلکه مردم رو هم درک می کرد. و اینکه چطور باید کلام خدا در زندگی مردم به کار گرفته بشه او روح حکمت داشت روح مشورت، روح قوت و مخصوصاً روح پرستش گفته شده که شادی او در روح پرستش بود. او این تجلی رو بیش از همه دوست داشت. به نظر من این یک منبع کتاب مقدسی برای اون نمادی هست که به کررات در کتاب مکاشفه اومده. یعنی هفت روح. هفت روح خدا نماد بسیار زیبایی در کتاب مقدس هست. در باب چهار آیه یک ما می خونیم که وقتی یوحنا رو دعوت کردند به او اینطور طور گفتن. بالا بیا. من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد این صدای شیپور بود که یوحنا رو به اونجا هدایت می کرد. این یک نماد بسیار کتاب مقدسی هست. این طور نیست؟ وقتی سلسله وقایعی که به عنوان آمدن سانویه مسیح از اونها یاد میشه شروع بشه اولین اتفاقی که توقع دارید بیفته چیه من شما رو نمیدونم که چطور اون وقایع رو در ذهنتون طبقه بندی کردین اما اونطوری که من از ترتیب زمانی وقوع این چیزها در ذهن دارم اینه که قبل از هر چیزی صدای شیپور خواهیم شنید من موزیک رو دوست دارم و شیپور رو هم دوست دارم اما هرگز صدای شیپوری مثل اون شیپور رو نشنیدم شروع وقایعی که به آمدن ثانویه ایسای مسیح معروف هست و گفته میشه که با ربایش کلیسا شروع خواهد شد توسط صدای شیپور هدایت خواهد شد جبرئیل اون شیپور رو خواهد نواخت و تمام مردم جهان صدای اون شیپور رو خواهند شنید. بسیاری بر این باورند که صدای شیپوری که از یوحنا دعوت کرده و گفته بالا بیا صدای همین شیپور هست که کلیسه رو به بالا دعوت خواهد کرد. و این سمبولی هست که به ربایش کلیسه ها اشاره میکنه. در مقابل اون تخت در آسمان یوحنا دریایی بلورین می بینه. این هم نمادی کتاب مقدسی بسیار زیبا هست. همیشه در خیمه پرستش در بیابان یا در معبد سلیمان تشتی هست که قبل از رسیدن به حضور خدا باید کاهن در اونجا خودش رو میشست یادتون هست که وقتی کاهن میخواست به جایگاه مقدس وارد بشه و گناهکاری در بیرون ایستاده بود او ابتدا باید به مذبح برنجی نزدیک میشد جایی که قربانی شخص گناهکار رو بر اون قرار میداد در حالی که اون قربانی به خدا هدیه میشد او به درون تشت می رفت که مانند وان بزرگی بود. جایی که او خودش رو پاک می کرد. پیغام اون تشت این بود. قبل از اینکه که بیایی و خدا رو بپرستی خودت رو پاک کن. و یا چه کسی می تواند به بالای کوه خداوند برود و به درگاه مقدس او داخل شود. کسی که کردار و پندارش پاک باشد. کسی که بودپرستی نمی کند و قسم دروغ نمی خورد. پیغام تشت این بود که شما باید قبل از اینکه وارد حضور خدای قدوس بشید به عنوان یک گناهکار پاک بشید. اینجا در مکاشفه دریایی رو ملاحظه می کنید که مثل بلور هست. به عبارت دیگه دریایی که جامد شده. در کتاب ابرانیان گفته شده که آب نماد پاکی مداوم هست که همه ما قبل از ورود به حضور خدا به اون نیاز داریم. عیسی در یوحنا 13 به پتروس گفت کسی که قصل کرده است احتیاجی به شستشون ندارد به جز شستن پاهایش او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید یعنی وقتی شما تبدیل شدید وقتی گناه میکن لازم نیست از نوع متولد شوید مثل این میمونه که شما در یک حمام عمومی حمام کردید و در راه بازگشت به خانه پاهای شما کثیف شده. وقتی به خانه می رسید، تنها کاری که لازمه بکنید اینه که پاهاتون رو بشورید لازم نیست که دوباره هم مام کنید. این شستن پاها، این پاک شدن مداوم چیزی هست که توسط اون تشت نشون داده شده وقتی شما میخواید به تخت خدا نزدیک بشید باید بدونید که بدون تشت این امکان وجود نداره حالا در مکاشفه دریایی هست که آب اون مانند بلور جامد هست چون که بلور نماد پاکی دائم است. در این زندگی پاکی ما دائمی نیست. در این حیات ما نیاز به پاک شدن مداوم داریم. عیسی به پتروس گفت اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت. یعنی اگر مرتبا تو را نشویم با من دوستی نخواهی داشت. اینجا بود که پتروس گفت نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشو. این نظریه که اگر تو را نشویم با من دوستی نخواهی داشت در کتاب مقدس توسط تشت به تصویر کشیده شده شما نمیتونید به خدا نزدیک بشید یا به حضور خدا وارد بشید مگر اینکه مرتبا مرتبن شسته بشید و این بدون تشت امکان نداره اما در مکاشفه تشت همون دریای بلورین هست چون که پاکی در این تشت حالا تمام شده و دائمی هست در مکاشفه باب پنج سمبولی میبینید از کتاب مهر شده گفته شده که یوحنا میشنوه که چیزی در آسمان اتفاق میافته اونجا کتابی هست که با هفت مهر مهر شده و کسی نیاز هست که بتونه این مهرها رو برداره. هیچ کس سزاوار نیست و یا مایل نیست که مهرها رو برداره. این ما رو به کتاب روت برمیگردونه. یادتونه وقتی بواز روت رو باز خرید کرد؟ بواز با پرداختن تمام بدهی های روت، او رو باز خرید کرد و با او ازدواج کرد. وقتی مردی ولی زنی بود، بدهی های زن در یک تومار مهر میشد و مرد اجازه نداشت که اون مهر رو بشکنه و به بدهی های زن نگاه کنه. مگر اینکه اعلام میکرد، حاضره که اون زن رو بازخرید کنه. به عبارت دیگه او باید شایستگی خودش رو نشون میداد و اشتیاق خودش رو برای بازخرید کردن او نشون میداد. تنها اون موقع میتونست بفهمه که چقدر باید برای اون زن بها بپردازه به در باب پنجم مکاشفه نظر بر این هست که ما نیاز به بازخرید داریم اما کسی نیست که شایسته باشه یا مایل باشه که بهای آزادی رو بپردازه در این موقع صدای گریه بلندی شنیده میشه چون که هیچ کس شایسته نیست یا نمیخواد که این کار عظیم رهایی بخش را انجام بده و بعد از اون خبر خوشی میشنویم کتاب مکاشفه میگه آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه مکن زیرا آن شیر شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است پیروز شده و او حق گشودن تومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد او ما را بازخرید خرید کرده اونجا کلمات زیبایی هست که مادر لاویان تسنیه و روت اونها رو یاد گرفته ای اونها سرود تازه‌ای می‌سراییدند تو شایسته ای که تومار را بگیری و مهرهایش را بگشایی، زیرات و کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان و از هر ملت و امت برای خدا خریدی. او مهر تومار رو بر او ملاحظه کرد که بهای رهایی ما چی هست و اون بها رو پرداخت. وقتی در دری به آسمان گشوده میشه، در باب چهار ما میخونیم که اونجا بیست و چهار تخت کوچکتر در اطراف اون تخت در آسمان وجود داره و در روی این تخت های کوچک 24 پیر نشستند. این پیران نشان دهنده رهبری قوم خدا هستند. باز همین یک سمبل کتاب مقدسی هست. یادتونه که داوود کهانت رو به هایی تقسیم کرد و در اونجا همیشه 24 کاهن مشغول انجام وظیفه بودند. محققین معتقدند که اون 24 پیر نماد رهبری قوم خدا هستند. بعضیها معتقدند که اون 24 پیر نشان دهنده رسول و دوازده طایفه اسرائیل هستند اما شاید لازم باشه این مفهوم که اونها نماد رهبری هستند رو کمی باز کنیم این پیران تاج‌های طلایی داشتند چون که اونها تا به آخر استادگی کردند و پیروز شدند اونها رداهای سفیدی پوشیدن و این نشون میده که اونها تا به آخر پاک موندند اونها هر کدوم چنگی در دست دارند که نشون میده اونها پرستنده هستند اونها کاسه های کوچکی داشتند که پر از بخور بود که دعای مقدسین برای اونها رو نشون میداد. این پیران پیروز بودند و تا به انتها ایستادگی کردند چون خودشون پرستنده بودند و مقدسین برای اونها دعا میکردند. این کلید ایستادگی تا به آخر هست. من شنیدم که میگن تعداد خیلی کمی تا به آخر ایستادگی خواهند کرد. گاه گاهی وقتی زندگی رهبران روحانی رو می بینم، فکر می کنم که این حقیقت داره اما این رهبران تا به آخر ایستادگی کردند ایستادگی آنها تا به آخر تصادفی نبود اونها پیروز شدند چون که خودشون پرستنده بودند که اینجا توسط چنگ به تصویر کشیده شده و اونها کسانی رو داشتند که براشون دعا میکردند اونها کاسه های کوچک پر از بخور رو در دست داشتن که نماد دعای مقدسین برای اونها هست باز هم تاکید میکنم که تمامی این سمبل ها کتاب مقدسی هستند نگاه کنید و ببینید که اونها در جاهای دیگر کتاب مقدس چه معنیی دارند؟ مخصوصاً در اولین جایی که در کتاب مقدس اومدن بعد از اون وقتی اونها رو در آخرین کتاب کتاب مقدس می به احتمال زیاد معنی اونها رو درک خواهید کرد این یکی از کلیدهایی هایی هست که به ما کمک میکنه رمز این پیام حیرتنگیز در مکاشفه رو باز کنیم که پیامی رمزی از طرف خدا برای قومش است وقت امروز ما به پایان رسیده از شما خواهش میکنم لطفا ترتیبی بدید که در جلسه آینده هم در ادامه بررسی این پیام رمزی زیبای مکاشفه ایسای مسیح با ما همراه باشید بله چه درس هیجان انگیزی در این درس مکاشفه ما مسیح رو در جلال رستخیزش میبینیم کسی که مرده بود و الان زنده است ابتدا و انتهای همه چیزها کسی که کلید مرگ و جهنم در دست اونه یادتون باشه خدا وعده داده هر کسی این کتاب رو مطالعه کنه برکت خواهد یافت پس شما رو تشویق میکنیم که در جلسه آینده در ادامه بررسی این کتاب با ما همراه باشیم تا برنامه بعدی امیدواریم که روح القدس شما رو با آرامش و شادی و امید خودش پور کنه